جنسي 57 تمرد سال. صلی الله محمد و رحمهم. هم سلام بحث در شبه بود که کوفین <تصفح> میشه به 14 شبهه حکمیه شمایی که نشهت میگیره از طرف حوامر و نوانی شاره و ازداره این شبهه منورد به بیان خودشاره شبهه مفهومی نشهت میگیره از تردید بین مفاهیم عدیده یا مفاهیم متعدده به حسب عرف یا لغت یا شن و عمر و اول خودش تقسیم میشد به دو قسم چون مفاهیم کلامش رو بعضی از موارد از استعمالات میگیره و بعضی از موارد از ارتکاضاتش شبه مصداقی گفتیم شبههکه نشات میگیره از تردید بین خصوصیت زاد و عمومیت انوان و برگشتش بین نگاه حکم انوانی یا زادیه و شبهه چهارم شمایه موضوعیه که گفتیم منشه تردید در وساعت حروضیه است و وساعت حروضیه برگشتش به یکی از این امور هفتانه است که خونیم اتضاع تردید در وساعت حروضیه ناشی از عدم تشخیص موضوع نسبت به احکام امانیه اتضاعیه ازای شما موضوعی منحصر به احکام انوانی مطلب دوم در ارتباط با همین بحث برای تنقیه مطالب اینه که ما چهار تا اصطلاح داریم این چهار تا اصطلاح یک معانی صوری داره و یک معانی واقعی داره که فنیه چهار تا اصطلاع عبارتند از یکی مختزی دوم مناک سوم موضوع و چهارم قصدار این چهار تا محل خلاف در کلمات یک تفسیری در کلمات و این برش میاد و یک تفسیر واقعی در فقه برای اینها لحواز میشه و این تحافت بین این تفاصیر اون به خیلی از امامان در ایت استمت. اما مختزی مختزی چیه مشهور مختزی رو طوری تفسیر میکنن که منتظر بر ملاک یعنی بین ملاک و مختزی فرقی باید نیست کمان که مرحوم ها عراقی این هم برش مشتبهه و فرقی بین مقتضیات و ملاکات احکام نمی دونه. صفحه 436 نهایت و جلد اول قائل به بردم فرقه. ولکن ظاهرم صبوت فرق جوهری بین این هست. فرق جوهری که بگیریم یعنی ثمره عملیه برش مترتبه فرق که سمره عملیه برش مترتب نباشه فرق جوهری فته نمیشه لذا مقتیات احکام غیر از بلاکات احکام مقتضی در اصطلاح فنی که مرحوم محقق نایینی و مرحوم آقای حکیم تصریح دارند برش در آدرسش اینجا نوشتم و مراجعه می کنید یعنی افتراز یعنی فرض وجود مسلحتی در فعل که فی نفسه مختزی جعل حکم شرعی منطقش باشه فرض وجود مسلحت یا فرض وجود مفسده در فیر. لذا عالم اختضا و مختزی عالم لحاظ افتراز و شهریت. فرض میکنیم این فیل مسلحت داره و همین فرض موجود مسلحت مقتدی برای جعده حکم شرقی در مقابلش ندا که که تفسیر میشه در تفسیر ناینی و مرحوم آی حکیم به صورت فنی با تغییر در تعبیات اینها برای بعضی از نکات تفسیر میشه به افتراض فعلیت مثلحت و مفسده نه وجود مثلحت بعضی از موارد فرض وجود مثلحته بعضی از موارد فرض فعلیت مثلحت و مفصده به فعلیت رسیده لذا ملاک فعلیت یافته مختصیه مختصی به ملاک بالفعل فرقشون فردشون فعال فرده قوبه و فعاله. نظرب نداره عینیت هم نداره تشابه هم نداره لذا مداک رو تفسیر می‌کنن به افتراز فعلیت مصلح یا مفسده با تغییر در تعبیرات اینها به خاطر بعضی از نکات که این فعلیت مستدعی فعلیت حکم شرعی لذا عالم مداک عالم فعلیت خیلی از عالم اختضاره که عالم شهریته و عالم فضله و عالم لحاظ. بعضی از موارد میگیم خم حرام شده به خاطر لحاظ اسکار درید خب چه مسکر باشه چه نباشه حرام میشه ولی بعضی از موارد میگیم نه خم به خاطر اسکار که حرام شده یعنی اگه مسکر فعلی باشه حرامه و این تا دو چیزه اسکار مختزیه یا ملاکه اگر اسکار مختزی باشه مسکرم نباشه حرام اگر ملاک باشه اگر ملاک باشه یقینا باید مسکر باشه تا حرام باشه این فرق این فرق نیست مرحوم محقق نا اینی حسب تبریلات کازمی جلد اول صفحه سی و بیست اینو داره تفریق بین ملاک و مختزی رو البته با یک فرقی با این چیزی که من نوشتم و همین مسلک رو صاحب مستمسک در حقای بر اصولش داره جلد اول صفحه 400 و هفت هم تصریح داره به تفریق بین مختزی و ملاک حالا این ازکاره که ما این همه بحث میکنیم یا وساعت دیگه سبوتیه یا روزیه اینها مختزی یا ملاک هن. که باید نظر بدید فقها که قاعده به حرمت خمر میشن به خاطر ازکار کسی منکر مسکریت و دخالت مسکریت نیست ولی آیا به نحو اختضاعه که اگه مسکرم نباشه حرام باشه یا نه مسکریت به نحو فعلیتش دخیده کدومشه؟ هزانت وقتی مال مادره مادری که خوب باشه با بسشش یا نه مادری که ولو بد باشه لذا عالم فعلیت منطبق بر عالم عناوین عالم اختزا منطبق بر عالم زباط هزانت مال ذات مادر یا مادر هنون و رعیب، رعوف و عاقله کدومشه اگه کسی ادعا کرد که زن من دیونه است میتونه هزانت رو از مادر بگیره یا نمیتونه بگیره اینها قبل از اینکه به قوانین مصوب برسه و آقای فقیه شما رو میخواد دیگه ما کاری به قانونش نداریم قانون چی میگه و حالا نظر فقیه شما چی میشه به کدوم نظرگیه میرسید آیا ذاتش دخیله یا نه عنوان دخیله این همون تفریق بین اختزا و ملاکه و دخیله اینو آقایم پیگیری کنن وگر کسی اینها رو سردرگیاره میتونه یک سال درس نیاد و قد تزه که اندر مقتزی یو وله حیثیت تعدیلیه مختزیات همون حیثیت تعدیلیه مزاهیون اونهاست مزاهی یعنی مشابه کما اند ملاک یا شابه وله حیثیت و ولوسته تردوزیه این نسبت به مختزی و ملاک بنابراین تفسیر اما موضوع بحث در موضوع اینجا هم نوشتم وله حدیث و عنه موضوع فی مجالات الفقه زور شجونه به خاطر ببینید اطلاق و عمومیت و اخلصیتی که دارن گفتیم مزاهیه کدومش عمه یعنی بیان بگیم ملاقات این حسیات تغییدیه یعنی هر کجا حسیات تغییدیه بود ملاق نه کدومش احمه یکیش احمه از دیگریه لذا ما زاهی مشابه و دو, دو هست بعضی ها میگن که هر ملاکی حیثیت تعلیلیه است ولی هر حیثیت تعلیلیه ملاکی نیست ولی قاعدش و قانونش اینه که حیثیت ها احمه حیثیت احمه قید از مقاط حیثیت تعلیلیه هست ولی ملاک نیست قید واجبه اسه قبله نسبت به نماز حیثیته اندی هست ولی ملاک نیست لذا اعم همون حیثیتان لذا مزاحی نوشتیم مزاحی هم بعدا در تعبیر یوشا به نوشتیم یعنی معنای مزاحی هم مشابه اول موضوع موضوع هم خیلی بحث مهمیه و اگر فلطاتی اشکالاتی و استرابی در حیطه استنباط داریم به خاطر تشخیص عدم تشخیص موضوع یعنی تمام بحثای اصولی حول محور موضوع میچرخه نه موضوع علم اصول موضوع شناسیه فقر موضوع چیه موضوع اگر کسی تشخیص نده حکم نمیتونه متردد کنه ولی ما شعبه حکمیه خیلی نادر داریم شاره چیزی گفته ما نمیدونیم مگه میشه فقط این حکمیه داشته باشه ما حکم فقرا رو ندونیم ما حکم قمار رو ندونیم ما حکم ازکار رو ندونیم حکم خیلی چیزها رو ندونیم این یعنی اصلا نشادنی اینه ما خیلی کم داریم نوع شباهات موضوعی است موضوع رو نمیتونیم تشخیص بدیم موضوع ذات مادر برای زانت یا نه مادر خوب عاقله فهیمه دارای مدرک تحصیلات عالیه کدومش این رو باید تشخیص بدیم آیا عنوان دخیلی ازات دخیله یعنی این امیت مختزی بوده یا میلاد بوده اینا تخیله الان آغازی عراقی وقتی اینا رو خرج میکنه فتاواش مسخره در میاد ولی مرحوم آیه حکیم در مستنزه و نائینی در فوائد رفتینارو قائل میشه فتاواش استراب نداره وقتی استخدام میشه خوب میتونن جواب بدن ولی آغازی از اونتش بر نمیاد به خاطر کرده بین دو چیزی که فنیه بین ملاک مختصی فرق قابل نشده لذا ایشون نمیتونه تشخیص بده از نظر فنی که آیا خمر مسکر بدفلد حرامه یا خمر مطلبا حرامه نمیتونه بگه. عمل موضوع موضوع از نظر اصولی تعریفش اینه که اما یترتب علیه الهو. یعنی شرط فیعیت هون منطقه اینو که کسی بحث نداره شبهی هم در این ندارن موضوع چیزی که ها که مترتب میشه این نمبر کلام در تشخیص نوع موضوعه یعنی آیا موضوع اثباتیه همون موضوع سبوتیه یعنی اینه که در دسانده دلیل اومده همون واقع موضوعه یا نه موضوع واقعی ما فرق داره با این و به عبارت انسانیه آیا موضوع خطابی همون موضوع ملاکیه موضوع خطابی که در خطاب اومده همون موضوعی که در واقع هست ملاکیه فرق است بین موضوع خطابی و موضوع ملاکی یعنی موضوعی که در لسان ادله لحس شده و موضوعی که واقعا موضوعه. بعضی از موارد موضوع اثباتی همون موضوع سبوتیه بعضی از موارد موضوع اثباتی فرق داره با موضوع ثبوتی و ما علم داریم بکنین فرق داره بعضی از موارد مشتبه مشتبهه نمیدونیم آیا موضوع اثباتی همان موضوع ثبوتیه یا نیست موارد اشتباه چطور میتونیم مردش کنیم این رو علل قاعده می من مردش کنیم علل قاعده هستنون میشه هندشگن فرق است بین موضوع خطابی و موضوع ملاکی مثلاً الخمر خمر و حرام این خم موضوع اثباتی موضوع خطابیه آیا موضوع سروبوتی هم هست؟ که دیگه هیچ موسکری حرام نباشه غیر از خم یا نه موضوع ملاکی ما چیز دیگریه که همون مسکریت باشه موضوع خطابی رو میدونیم موضوع اثباتی رو میدونیم ولی انتباقش رو بر موضوع ملاکی و ثبوتی نمیدونیم فیه خلاف فقط ده ها که موضوع خطابی با موضوع ملاکی فرق دار. الخمر حرام میگن موضوع ملاکی واقعی همون مسکره خمر یکی از مسادی بشه. لذا ترتب حکم بر موضوع احتیاج به واسطه داره یا واسطه صوتی یا واسطه ثباتییه واسطه عرویه اسباتییه که من بس یا واسط های صوتییه یا واسطه عرویه میخوا واسطه‌های های واسطه‌های واسطه اروزیه واسطهای سبوتیه. واسطهای سبوتیه همون صوتی همان مختذیر دارد واسط های و واسطت و ثبوتیه هوان مختزی مختزی چیه؟ مختزی همه که شاره به حاز میکنه کاری به فعلیتش همسالین ها نداره چرا شاره خمر رو, خم رو حرامش کرد؟ به خاطر ثبوت اسکار حتی در بعضی زفرادش لازم نیست خمر مسکر باشه تا حرام بشه لذا در این موارد حکم به ذاتش میخوره حکم به ذاتش میخوره نه به عنوانش ذات خم حرام و بعدا در ادامه بحثی رو تنظیم کردم بخواییم بگیم که احکام ذاتی خودشون سرس میشن که اونو در تفصیل این مطالب میگیم ولی فعلا در شرح این اصطلاحات چارگانه داریم بحث میکنیم واسطه سبوتی همون مختزیات چیزی که شاره لحاظ میکنه ولی لازم نیست فعلیت پیدا بکنه چاره لحاظ کرده اون هنونیت مادر رو نسبت به هزانت در عالم لحاظ و تشلیل لحاظ شده نه اینکه در عالم مجعول حتما باید باشه مادر اگه هنونم نباشه باز بچه به مادر میرسه چون ملبوظ در عالم جعل نه اینکه در عالم فعلیت حتما باید به فعلیت رسیده باشه لازم نیست ول واسطه کل اروزیه حوال ملاک فی مقام المجهول و الفیلیه واسطه اروزیه اون ملاک معخوض در مقام مجهول و فیلیهت ازا بالاتر از مختدیه در مقتضیات احکام ثابتند در واسطه های اروزیه مترهیرند فقط وقت الخط بین موضوع ثابت و موضوع متغیر، یه کسیر من مجالات الفر جعل ثابت به جای متقیر و متغیر به جای ثابت یو زیه من ثابت و متغیر. هر دو به هم میریزه ما ثوابتی داریم متقیراتی داریم قبلا هم گفتم که نوشته هایی داریم از ماسرین در رابطه با ثوابت و متقیرات آنها رو چون فنی فن نمیدونیم اسم ازشون نیا مطلب از اونها نمیاریم به این شیوه که داریم میگیم مفیده که موافقه با فقه ناینی و میزای قومی و از حسن و مرمه های و فقه های عرفی و چیزی که فنیه اینی که داریم می نویسیم اینطور نیست که قافل باشیم از اون نوشته های در رابطه با و متقید. اونها ثوابت و متغیرات یه جور دیگه معنا میکنن و اینها اضاعه فقه واقعا ما بیاییم متقیرات معنا بکنیم به اینجا اگه شهرداری رسید به یه ساختمان ما رو خراب بشنیم چون به خیابون افتاده اینها نیست اونها که قوانینه. ما بحث همون فقهیه کاری به قانون نداریم از نظر فقهی ثوابت کدوم متغیرات کدومه شما حرمت خم رو جز سوابت میدونید یا جز متغیرات میدونید یا خیلی از واجبات و حتی امر به معروف و نحی ازمان کرد اینها جزء سوابت یا متغیراته در نحش البلاغه داره حکمت 600 و هفتاد و پردهی شما تغیرم و ما اعمال و الجهاد فی سبیل الله این در امر بالمعروف و ان المنکر در بعضی نسخها به نسبت امر الى, الى الامر بالمعروف والنهی ان المنکر الا که نفستن فی بحر نجی یعنی تمام خوبی که در شریعت اومده و جهاد فی سبیل الله که قابل قیاس با عقل بشر نیست و اما بعد فالجهاد آبون من ابواب جنه قد فتحه فتح الله خاص خاصت اولیاء تمام جهاد رو و تمام خوبی ها رو نسبت به عمره معروف مثل آب دهان نسبت به یک دریای مفواج پهنابانی سا کرد. نفسه یعنی قطره همون آب دهان الان بردان عبرم من نیزمون هستن نیست تو خونه های خودمونم انتا حتی نسبت به خانواده خودمون ما عبرم معروف نداریم اگه باشم مال دیگران دیگران عیب دارن ما مادرمون خواهرمون پدرمون برادرمون عیب ندارن عیب اگه هست مال دیگران اینطور طور نیست عیب اتفاقا همین جه هاست نمیدیم بچه خودمون کاری میکنه عیب نیست بچه دیگران اگه کاری بکنه ایب. لذا امر به معروف نهی از منکر ذاتی یا انوالی اختلف فی فیزیک. اونهایی که انوالی میدونن مشروط به چهار شرط میدونن ولی بعضی از فقها محاصرین محقق صاحب شرائین ها ذاتی میدونن و مشروط به هیچ شرک نهی لذا اگر کسی ثوابت و رو بخواد به موضع خودش هم. اعمال نکنه تشخیص نده هر کدوم از ثابت متغیر ضایر میشه و یعرض و عملیت الاستعمال الاختار کبیره، زیاب و تزییر و امثال اینها که اینها رو نوشتیم و ثوابت در شریعت قدرها مثل ستونها و ارکانیه که مبنای این شریعت برای ماست ولی متغیرات هم خب متغیرم این اسمش نوشه وله حاصل احکامی که از مقتضیات نشأت میگیره احکام تعبدیه یه حساب میشه منطقه ذاتی بر سه قسمه ما اینجا دو قسمش رو نوشتیم چون الکلام یه جگل کلام میشد و مفهوم نمیشد احکامی که از مقتضیات نشت میگیره احکام ذاتی مثل حرمت عیان نجسه مثل حرمت خیلی از محظمات معلوم منطقه این احکام تعبودی ذاتیه نزادیه مطلقه مثل حرمت نکاه اومهات و حرمت قدر و حرمت خیلی از محظمات غیر قابل اقنازه و وجوب حفظ بزه اسلام وجوب دفاع از نفس و حریم و امثال این اینا ذاتیه مطلقه به هیچ و قابل اغماز نیست اینها ذاتیه متفرقه اینا رو بحث نکردیم ولی این قسمی که نشأت می‌گیره از مقتضیات ملحوظ در عالم جن اینها ذاتیان منتها ذاتی نسبت به متغیرات در قواعد احکام ذاتیه مطلقه وقتی این احکام ذاتیه مطلقه تو عد من حرمات الله و من روایاتی داریم که اگر کسی حریم الهی رو خود بشکنه حریم کدومه حریم این محرمات ذاتی است. مثلا نکاه با مهارم گناهی نیست که کفاره اینو تکفیرش کنه در بعضی از آیات در رابطه با حدش هم داره که بعضی از گناهان امنی در حض این دیگه کفاره نداره چرا؟ اون دیگه انتقام الاهی رو مناد و یعنی تقیمون منه اون دیگه انتقام نکاه با مهارم انتقام داره قتل نفس انتقام داره و چیزهای دیگه اینها جزء حرماته که نصوصش هم در وساید شیه هست آقای مراجعه میکنن بهتر از ما پیدا میکنن ولی احکام ذاتیه نسبیه مثل حرمت خمر و خیلی از محرمات در این قبیل از این قبیل اینها بعضی از موارد تخفیض داره با عروز عناوین ثانویه الزامیه نه مطلق عناوین ثانویه یک فرق جوهری هست در اینکه این عروز این عناوین ثانویه که می‌یا چی کار می‌کنه و آیا یک قسم یا دو قسمه مشهور قایلن به اینکه انابین یک قسمه یعنی بین قصر و حرج و زرر و استرار امثالی هیچ فرقی نیست ولی از قبل ما گفته بودیم که فرق بین ان... انابین سانویه الزامیه و قید الزامیه بعضی های چیزای الزامیه مثلا زرر و اضطرار اینا جز الزامیات ولی قصر و الزامی نیست خیلی از کارهای ما عصر داره و این رافع تکلیفین ها نیست لذا اگر شاره بخواد با عصر و چیزی رو برداره امتنانا برمیداره و چیزی که امتنانن برداشته بشه ملاکش باقیه ملاکش که باقی باشه من اگه عمل بکنم سید یه موقع زن میگن روزه نگیره چون عصر و هرج داره یه موقع میگن زرر داره اگر زرر داشته باشه و روزه بگیره هم روزش باطله هم حرام انجام داده فیلش حرامه ولی اگر با اصلاحرش باشه این هم روزش سیه هم حرام انجام نداده این ملاک ملاک امتنانیه اون یکی ملاک ملاک امتنانی نیست یعنی زرر و استرار امتنانی نیست عقلم میگه زرر باید رافعه باشه و شرم اومده گفته ولی اصراحرز اینطور نیست اصراحرز چیزی که اگه بخواد برداره با امتنان برمیداره و امتنان شامل رفت املاک نمیشه فقط الزام رو برمیداره شما ملزمه به گرفتن این روزه نیستی ولی حالا از اومد روزه رو گرفت روزش صحیح حرام انجام نداده ولی اگر ضرر داشته باشه روزه بگیره هم حرام انجام داده هم روزه ش باطله و باید قضاش پس فرق از بین عناوین ثانویه عناوین ثانویه در اون قاعده لازارت نوشتیم مفصلا آقای مراجعه کنم در اونجا نوشتیم یا الزامی یا غیر الزامی اگر الزامی باشه خب برمی داره ولی اگر غیر الزامی باشه این نیاز به امتنان داره اگر امتنانی باشه برداشته میشه الزامش و الا برداشته نمیشه و تنها مصور و مجوز برای اتفاع احکام ذاتیه نسبیه فقط اضطرار یعنی حرمت خم فقط با استرار برداشته میشه وجوب نماز فقط با استرار برداشته میشه استرار که در از موارد به خاطر خوف یا تقیه و امثال اینها متمثل میشه در خالص. اختزای استرار رافع حکمه نه اینکه موضوع رو بخواد درباز بکنه در موارد درب استراری موضوع در اختزای خودش ثابته و چیزی آرز نمیشه و این اختزایی که در این موارد بوده اینا اختزای سبوتی هست اختزای یعنی همین مقتضیاتی که الان حالا خم چرا را حرامه چون یک اختزای در عالم سубوت شارد نهاز کرد که همان ازکار باشه و با قدم که اختزای سубوتي داشته تهدیدش کرد. ولی یک اختزای اسباتي هم داریم. اختزای اسباتي در مقابل اختزای سубوتي که سابق پنج نوشتیم، لایق با آن نهاز اختزای سубوتي یقابله او ال اختزای اسباتي. اختزای اسباتی چیه؟ اختزای اثباتی در موضوعات متغیره. ما اینکه موضوعات متغیره. مثل خیلی از احکام شرعیه غیر تعبدیه و احکام عقلائیه. اینا موضوعاتشون متغیره. یعنی دو دسته از احکام رو ما داریم که موضوعاتشون متغیر میشه. یکی احکام عقلائیه و یکی احکام شرعیه غیر تعبدیه. تعبدی در نیست. اینا موضوعاتشون متغیره. چینا را متویلش کرده؟ مختزیات اثباتی اون چیزهای در مقام خارج لحاظ میشه و فعلیت اینا دخلیده این در مقابل اون مختزیات سبوتی که منجر به سبوت احکام ذاتیه مصبیه شده بود لذا موضوع در احکام ذاتیه مطلق ذاتیه در احکام ذاتیه یه نسبیه اختزاییه در احکام متغیره اعتباری یعنی تابع اعتبارات متقدمه سبعه که گفتیم موضوعات اگه بخواهم متغیره باشن مشعر میرد وساعت اروزیه وساعت اروزیه مختزیات متغیره داری یعنی مختزیات اثباتی مختزیات اثباتی یعنی حاجات و ضروریات زندگی و تاثیر زمان و مکان و امسالهی هیل از اون مختزی که کشاره برای اسکار و خم و امثال اونها لحاظ کرد اینا مختزیات یعنی شرایط و ظروف جامعه و فرد و هر چیزی که دخیل در حیطه استنباطی باشه که اصطلاحاً اخیرا میگن تأثیر زمان و مکان در اجتهاد خصوص همین فردو میگیره یعنی تأثیر زمان و مکان اینها همون مختزیات اثباتی هم. یعنی شروط و ظروف و شرایط زمان و مکان که در دو قسم از احکام راه داره یکی در احکام اولایی تغییرش شکیده و یکی احکام شرحیه غیر تفقدی لذا در تفقدی ها تأثیر زمان و مکان ها راه نداره لذا موضوعات متغیر خصوصیات در اینها در مولغا میشه الا خصوصیتی که همون واسطه urudiye باشه و تنها معیار برای از حکومت این موضوع و در این موضوعات متغیر چیزی که داخل عمدت این داخل ما برای تشخیص اون هفت قسم هفت قسمی که گفته بودیم فعلیت و حدوث و بقا و نمیدونم تقدید و ترکیب و امثال اینها رو تشخیص بدیم عمده تریگاهش مناسبات یعنی مناسبت زنجیری میشه و اونا تتتخقد و اند مناسبات للکشف عن حقیقت الموضوع و مناسبت فقهی که دقیق در تکوین موضوعات احکام باشه قبلا تعریفشو گفتیم از نهایه اصول علامه حتما اونو مراجعه کردن و این گفتیم چهار قسمه طبق تقسیمی که عامه دارن و بعضی از این اقسام قابل قبوله و بعضی از این اقسام قابل قبول نیست و بحث مصطفى در رابطه با این بله بابش رو نداشت من از اون کتاب قدیمی داشتم شب نگاه میکردم یعنی نداشت میخواستم بنویسم صفحه که من دیدم 349 بود از از راقهای خطی قدیمی حالا اون پنجردی رو من نگاه میکردم. که کل امور ذلت عقوق تلقطو به قبول این نهایت بحث به رابطه با موضوعات و این موضوعات رو ما ذاتی بدونیم، افتضایی بدونیم یا اعتباری و انوانی بدونیم، اینا خیلی مهمه. ذهنیت می‌خواد برای تشخیصش در چی موادی قابل به تغییر در موضوعات بشه؟ موضوع متغیر بدونیم، در موادی که مناسبات داخل باشه، در مواردی که اون هفت قسم راه پیدا کنه حالا اینم مطلب طبقمی بود قبل از رسیدن به بحث در رابطه با اون هفت قسم که شبهات موضوعی وقتی میگن در این قسم فقط در این اقسان شبه موضوعی داریم به خاطی مواسطهای و رو ما میخویم تشخیص بدیم ما نمیدونیم شعار کدوم روشه لحاظ کرده آیا حدود رو لحاظ کرده یا فعلیت رو آیا مبدع رو یا وصف رو آیا تغییر رو یا ترکیب رو؟ ما این نار لذا شو موضوعیه در این موارد راه پیدا میکنه و اون شهی موضوعیه که ما شنیدیم میگن دو تا لیوان با هم مخلوط شده اونها که چیزی نیست. اونهایی که حکمش واض یا انسان قیل به اون از جزیت علمژمالی میشه قیل به احتیاط میشه یا نمیشن مثل میث قومی قیل به احت یکی از اطراف میشن و تخیص در باقی اطراف و من در واقعی اطرافی که محضور بوده لذا اون علم مبانی میشه ولی شبهه موضوعی واقعیه که ما موضوع رو بخواهم تشخیص بدیم الان در معزن شرط اینه که عادل باشه این ادالت ادالت ظاهریه یا واقعیه کدومشه بگیریم خب ما موضوع رو هم تشخیص نمیدیم یعنی به کدوم از آن میشنسان انسان اعتماد کنه استناد کنه که وقتی اون اگه از آن گفت دیگه امام از آن نهیه دیگه نخواد ثابت بشه خب این ادالت الان شرطه ولی کدوم ادالت ادالت ظاهریه یا واقعی. خیلی از موضوعات رو ما تشخیص نمیدیم چیزهای شنیدیم چیزهای رو شنیدیم ولی نمیدونیم واقعیتش چیه من پول خودم رو میخوام وقف کنم اینو میتونم یا نمیتونم موضوع شما نمیتونیم تشخیص بدیم چون اون چیزی که اومده گفتن اون چیزی که میخواد وقف بشه باید این خارجی باشه خوب این این خارجی نیست پوله پول در حسابه طلا و نقره خودم رو میخوام وقف کنم که از این مبت زنها خواستم برن تو مجالس پرز بدن از این استفاده کنم چون بعضا شاید پول ندارن دیگه از این بدل ایجاد میخرم میندازن میرن تو عروسی ها بقیه عروسی ها چقدر به خرج میفتن یعنی قابل لباسی که تو این عروسی پوشیدن تو عروسی بردی هم بپوشن قلیه نما میشن خاطر اکثر اهل جهنم همین زن ها هستند. چه دینیه دین جدیده یعنی واقعا سیره اینها رو با سیره فاطمه زهرها سلام الله علیه مقایسه کنن چه زندگی اینها دارن چیه ما منبر میریم اینها رو نمیگیم وقت مدعی امر به معروف و از منکر هستیم و میگیم امام حسین برای امر به معروف قیام کرد و برای اینکه ما به پولمون برسیم نمیگن اینها واقعا بزرگترین منکراته ما را برای هر مراسمی یک لباس بکوشیم بعد حتما باید طلای ظاهری بندازیمون کس به شهنم و شهنی همش تحصیل میخواد شما اشان دا جاز ها میشید و فقیه باید عادل باشه اگر عادل باشید چی نظر میدید؟ این ها رو میگید اشکال نداری اشکال داره نظر شماها ها و نظر فقهای های محترمه برای مقددینشون و حجت برای خودشون تمامه ولی شماها که فرزانه میدونه تقلید کنید میخوایید نظر بدید و یقینا عدالت هم دارید انسان عادل چی میگه میگه اینها ملحق به لباس شهرت هست یا نیست ما برای مردم لباس عوض کنیم زندگی ها برموم علامه جعفری که بی نظیر بود واقعا در بین فقهای شیعه بلو معروف به فیلسوف ولی از نظر فقهی یه بحثی داره در این شرح نحول بلاغه که ها قبل از اینکه بخوابن این حتما بخونن و همچنین نقد مصنویش در نقد مصنوی چقدر چیز داره خیلی از طلاب زمانی ما اون تعقیق بدیم چی بگیم به خاطر چیزی نخوندیم ما با ده منبر و 20 منبر و سیمن منبر دیگه میشه منبر درست کرد گریز گریز به بحث اینها خدا می توهین به اهل بیته منبرها باید وزانت داشته باشه انسان اگه خود گریه نمیاد برای چی مردم گریه کنن برای چی گریه کنند؟ شما خودت گریه نمی دیگران چرا گریه کنند؟ قدیم بوده از گریه منبری مردم گریه می کردن. من خودم دیده بودم منبری های جمعه دقیقه گریه میکردن. از آن چیزی نمیتونستم بگن زبون نمی روزه بخونند الان مبیند صوتو آموزش مداهی صوت به صوت دارم میرسن که چطور بخون بعد از این نو بگو بعد از این اینو بگو و طبعاتی که داره شما ها در رابطه با این باید بخونید هم نقد مثنوی رو که واقعا فرصت برش بذارید بخونید خلاصه خیلی از کتابهای شرقیین و غربیین، محصد تلاش چه پنجاه سال تحقیق با فکر خیلی خوب کرده کرد خیلی نظریات کلامی که مولدی بر خلاف شیعه داشته امرو نقد کرده اگر قائل به جبره قائل به تفویض که یقینا هست اینها را امرو نقد کرده یعنی یک کتاب کلامیه این ما هم میکنیم برای نخوندن وقتش این چه کتابی داریدم عمرشو رو طلب میکنه برای این این کتاب سلامیه ماها اونقدر در ذهنامون این عقیده متکلمین سنی رو سوخ پیدا کرده حتی از اون امثله که ما شروع کردیم من یادمه که دو سه گذشتو و من دیدم این برخلاف اول این معرفت الجبار و آخرالعل از تفیز الانویل یعنی این برخلاف امرو بین الانویل یعنی جبر و تفیز کتاب همان اونهاست اونها, اونها میگن وقت در این نقد مصنوی خیلی از آراء باطله اونها نقادی میشه و معلوم میشه که مسلک واقعی کدومه و همچنین در شرح نحص و که خیلی موضوع نوشته شده بحث ای داره در اونجا در رابطه با زندگی با خود واقعی نه با خود مجازی اون خودی که دیگران میخوان دیگران میخوان من اینطور باشم اونطوری باشه نه خودت باید چطور باشی با اون زندگی کن زندگی با خود واقعی نه با خود مجازی شما یه نظر بدید اگر براش نظر بدید معنا میخواد مبنای شما در متوعات ثوابت خودمش باید باشه خیلی از موضوعات واقعا مشتبهه وقف بر آسمان محل خلاف مشهور نافیه وقف بولی زن زیورالات خودش رو وقف کنه نمیخواد حیلیه کنه به کسی از کفش بره میخواد در تایفه خودش از این بعد هر کسی فقیر بود از اینها استفاده کنه برای رفتن به مجالس سنی ها مثل خیلی هستن مشهد میان بعضی از هتلها ها میدن زن به بره برگرده شبیه دو میلیون و یک میلیون و نیم پول میگیرن این هتلها. و ظاهر شهر مشهد رو جهنم شفاتی شدن اون که که هیچ ارزشی از نظر دینی ندارن ولی پول دارن میان اونجاها تلام ایندازن و اطراف هرم عرض میزن بسیر وقت کنه هولیدو میشه یا نمیشه نظر شماها رو میخواد و خیلی از موضوعات دیگه یعنی اگه موضوعات رو بررسی کنم در یکی از این صفحات که این دفعه آماده میشه برا نوشتم من کاغذ نداشتم حدود دیویست از این موضوعات رو نوشتم که موضوع شناسی میخواد یه یعنی موضوعش شما تشخیص بدید چی میگید؟ اگر اختلافی هست خاطر اختلاف این موضوعه یکیش این حلیگیه یکیش آسمانه، یکیش وطنه یکیش نمیدونم مادره یکیش پدره و امثال اینها ها بقیه این موضوعات رو چه کنیم وقت بذارن آقای این رو با تعمل با این تفصیل منبی که ما گفتیم که به نظر میرسه دقیقتر و یک راه میان از خیلی از زوائد تاسته میشه اگر یک دور بخواید فواید ناینی رو بحث کنید از اول تا آخر موحصلش همین حرفاست لذا میشه اینها رو شما خوب هضم کنید که نیازی به هیچ کتابی نداشته باشید بعد ما فوق اینها یک نظریاتی یک مبانی خودتون پیدا کنید اعتکازاتتون کشف اعتکازاتتون احاله به عرفتون تشخیص موضوعاتون تقویت میشه ان بعد همین تشخیص موضوع باعث میشه که در تشخیص احکام خیلی جازم باشید و زود و سریع به اون حکمی که میخواید بلیسید <تصفيق> بقیهش انشانلا بعد از تحتیلات، حالا بعد از تحتیلات، این با کندم تمام میشید از این تحتیلات آنین استفاده کنند از این تحتیلات استفاده کنید یکی برای رسیدن به امور زندگی خودتون و یکی برای درس که عقب مونده. و اگر فرصتی داشتید حتما یک دوره امل نحو رو تو این تعطیلات بخونید. تعطیلات که تمام میشه؟ یک شنبه میشه، یک شنبه یعنی شهادت امام علیه السلام. یک شنبه که نمیان. نمیان، شنبه بعدش ان دیره نه اگه دیر سهشنبه بیان ها سهشنبه خوبه شنبه شهادت سهشنبه خوبه نمیدونم اکثریت بودوم رو میگن بله من که میگم شنبه شنبه بعدش باشه Thank <laughs> you.